عوض الله سمیع العلیم من شیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی نبی نابعاله تاهری قدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم عصر بخیر خیر عرض میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به لطف الهی از هر گنه گزند و بلایی هم به دور باشید ما دسیده ای رو از آقای متنبی در مده کاپور اخشیغی برای شما میخونید و تا بیت پنجم رو من خدمت مید. شما عرض کردم و الان بیت ششم رو برای شما میخونم و شما بیت ششم رو ملاحظه کنید حبب تو که قلبی قبل حبک من نعا و کان کانت قد دارن کن انت وافیا حبب تو که یعنی احبب تو که بیشتر البته احب و یو کار میبرن اما حبب تو هم استفاده میشه حبب تو که یعنی دوست میدارم تو را احبب تو که یعنی دوست میدارم تو را حبب تو که قلبی قلبی این یعنی یا قلبی مناداس است به حذف حرف ندا توجه داشته باشید تو که یا قلبی قبل حب بک من نع حب مصدر اضافه شده به کا اون من مفعولشه قبل خوب من نعا نعا یعنی بعده دور شد؟ یعنی دور شد جدا شد میگه حبب تو که میگه دوست میدارم تو را ای قلب من قبل از دوست داشتن تو کسی رو که از ما جدا شد این منعا کنایه به سیف الدوله دوله داره یعنی قبل از اینکه تو دوست داشتی بیست شیف و رو اون کسی که بیوفایی کرد و از ما جدا شد که گفتم سیف و دوله باش برخورد کرد و او رو از خودش راند میگه ای قلب من تو رو دوست دارم دوست داشتم قبل از اینکه تو علاقمند به صیف دوله بشی تو قلب من بودی من تو رو دوست داشتم و قدکان قدارد و حالان که او قددار بود قددار یعنی بیوفا سیغه مبالغه قادره وفا یعنی وفا کرد قدره یعنی بیوفایی کرد خیانت کرد و قدکان قددارم میگه اون آدم بی وفا بود وفا مند نبود فکن انت وافیا تو قلب با وفا باش نسبت به من فکن انت و انت تحکید است برای زمیر داخل کل که اسمشه میگه اون به ما بی کرد تو دیگه بی وفایی نکن تو دوستار ما باش، دل از او بکن و کن انت این وفای نتیجه است و قد کان قد دارن این وابا وحالی است و حالا که او بی وفا بود بی وفایی کرد بنابراین تو تو دل با وفا باش تو اهل وفا باش تو به ما بی وفایی نکن و از او دل بکن و به او دل نبند پس بنابراین این بیت رو هم خدمت شما عرض کردیم فقط قلبی منادا بود یعنی یا قلبی نعا هم به معنای سعوده درست شد من نعا هم کنایه به سیف الدوله بود خطابش هم تو تو توکه همون یا قلبی خطاب به قلبشه درست شد دیگه چیز خاصی نداره و من این بیت رو کامل برای شما گفت بریم بیت بعد خب می فرماید وعلم انل بینه یشکی کرد بعدهو فلستف و تو علم یعنی باور کن بدون فیله هم بدی که علیم و یعلم و این انه با اسم و خبرش انه با اسم و خبرش میشه صد مصد دو مفعول علم نه با اسم و خبرش صد مصد دو مفعول فعلا البین یعنی الفراق بانه یعنی ابتعده یعنی فارقه ان البینه الافلام داره یعنی جدائی او یعنی جدایی سیف و بی بیوفایی او وعلم انل بینن هنوز به دل خودش میگه که تو اون بید قبل میگه ای دل باور کن که فراغ او یشکی کر تو رو به شکایت مندازه بعد او, بعد از او. یعنی برات سخت بیوفایی او و نامردی او و این طور رو عذیت میکنه بعدش میگه جدا شدن او جوریه که تو را آزار اذیت خواهد کرد بدون اینا بنابراین فرق سیفای نتیجه است فلسطف و عادی پس تو دل من نیستی فعاد یعنی دل تو دل من به حساب نمی آی ان این رأی اگر ببینم که تو شکایت می کنی میگه رفتن او و فراغ او داور بعد از این که بره تو دل من نیستی اگر بیای و شکایت کنی یعنی تو استوار باش، مرد باش رفتن او در داوره ولی تو خیلی خیلی با قول خودمون سفت و محکم باش اگه دل منی تو دل من نیستی اگر بیای و این درد او رو بپذیری و شکایت کنی درست شد یوشکی که یعنی وادار میکنه تو رو به شکایت تو رو شکایتمند میکنه گله گذار میکنه میگه رفتن او سخت باعث گله گذاری میشه بعدش تو دل من نیستی اگه ببینم بیای گله کنی یعنی تو مقاوم باش تو مقاوم باش تو تو این وادی بازی را نباس وعلم البینه یعنی بینهو یعنی او. یوشکی کرد یعنی تو رو واداره به شکایت میکنه بعدش یعنی رفتنش سخته من میدونم ولی تو دل من نیستی اگر این شکایت رو بیای بکنی تو باید استوار باشی و گله نکنی خودت رو بگیری و در تو تأثیر نکنه فلست تفاعدی ان رأی تو که شاکیه این شاکی حال است از برای کاف تو دل من نیستی اگر ببینم تو رو در حالی که داری شکایت میکنی ببینم که تو تأثیر کرده بهت و اومدی داری گلگذاری میکنی خب اینم میتر بحب یوشکی کرد بعدهو یوشکی کرد به رفایل و مفعول او متعلق به یوشکی کرد شد این او میخوره به اون منلعا خوش یعنی سیف الدانه این یوشکی که او خبر انه است انه با اسم و خبرش گفتیم صدق مثل دو دو نفعوله بله فلسط فعادی فاشفای نتیجه بود فعادی خبر لسته است فلسط فعادی این رعی تو که شاکیه یعنی این رعی تو که شاکیه رعی که شاکیار. فعل شرط اینه جزاش به قرینه فلسطف و عادی از شده دلیل و مقدم شده قرینه جزاس یعنی ان رأی تو که شاکیان فلسطف و عادی. اگر ببینم رفتن او در تو تاثیر گذاشته و اومدی داری گله و شکایت میکنی تو دل من نیستی من دل اینطوری نمیخواب باشم گو فا این ندومو عین قدرون به اذا ها کن اسرال قادرین ها قدر جمع قدوره قدورم سیغه مبالغه قادره قادرو که گفتیم یعنی چی یعنی بی وفا بر ضد وافیه درست قدور قددار سیغه مبالغه است یعنی بسیار بی وفا جمع قدور میشه قدر مثل قفور قفور درس این جمعش خب پس قدور یعنی بسیار بیوفا میشه قددار جمعش قدر بعد به خاطره وزن شعر قدر و قدر خواندیم مثل اینکه توی های قبل درست شد را که جم اسد بود است گفتیم برگردید دو سه بیت قبل درست شد که ما اسد را بگید تو اون بیت پنجم فما ینفع العست گفتیم اسد جمع اسد قدر هم جمع قدوره قدر خونده میشه من باب وزن شعر که تعریف شد دموع جمع دمعه یعنی اشک چشم جمع دمعه یعنی اشک چشم رب یعنی صاحب هم برمیگرده به چشم قادرین که جمع قادره یعنی بیوفایان یا جواریا که جواریه بوده اشباه شده شده جواریا این جمع جاریه است جواری جمع جاریه یعنی روان جرا یجری اسم فائلش جارن جاریانه درست شد؟ بعد محنسش جاریتون درست شد مثل باقیتون جمع باقیتون و باقی جمع جاریتون جوال خب لغات رو بهتون گفتم حالا ببین چی میگه میگه که پس هم آنها و ان دوموال این عشق چشم قدرن خائن است عشق های چشم خائنند به صاحب اون چشم چشم وقتی عشق میریزه داره خیانت میکنه به صاحب اون چشم چرا؟ چون مردم میبینن این داره گریه میکنه میفهمن تو دلش چه خبره بیوفایی یه دوست در او تاثیر کرده داره آتیش میگیره ببین چه جوری داره گریه میکنه زیرا همانا عشقهای چشم خیانت کنن لگانند به صاحب آن چشم کی؟ حالا اشک چشم همه جا خیانت میکنه به صاحبش؟ نه یا جایی هست یه کسی فرزندش مرده یا خدایی نکرد آسیبی بش رسیده و مردم تازه دلشونم براش می میگن نه میگه ازا کن کننون میخوره به دوم هنگامی که باشد اون عشق ها جواری ریزان جریان یافته هنگامی که اونها جاری باشند اسرل قادرین به دنبال بیوفایان اگر یک کسی به دنبال کسی که به او بیوفایی کرده عشق بریزه این عشق ها خیانت میکنند به صاحب او ها آبروش را میبرند میگه دنگامی که عشق ها جریان یابند در دنبال معشوق بیوفا اصلا القادرین به دنبال کسانی که با آدم دوست نیستند و بیوفا هستند اگر عشق ها به دنبال اونها جاری بشه این اشک های چشم خیانت کنندگانند اون چشم اینها نباید گریه میکردن دنبال خواهند ولی حالا که گریه میکنند دارن آب روی اون شخص رو بگیرد میبرد این, این کنه فعل شرط ازاست جزای شرطش به قرینه فا این ندومو الین افتاده یعنی انگار این طوری بوده ازا کن اسرال قادرین جواریا فا این ندومو الین قدران بربه ها اون جواب شرطش ولی چون جواب شرطش مقدر شرط مقدم نمیشه اون میگن قرینه جواب نحوی های جواب برای این در تقدیر میگیرن ولی خود تحصیل اون ظاهر نمیشه ترجمه هم نمیشه این از نظر گران. پس میگه اگه عشق چشمی جاری شد آه این داره خیانت میکنه به اون صاحب چشم و آبروی به او رو میبره موقعی که بگو در پس کسانی که بیوفا هستند جاری بشه چرا چون مردم میگن خاکت اون سره اون که به تو وفا نکرد اون داری باش گریه میکنی ارزشی داره این قشنگ. و اِنَّ دُمُوعَلْعَيْنِ قُدْرُمْ بِرَدْبَهَا اِذَا كُنَّ اِفْرَلْ قَادِرِينَ جَوَارِيَا خب؟ جواریه خبر کن است. اسره هم ظرف به معنای بعد متعلقه به جواری حالا اینجا یک شنایهی به صیف و دوله میزنه خوش کنید سیفت دوله اون موقعی که این پیشش بود خیلی به این کمک کرده بود و خیلی چیزها داده بود و خیلی سله و عطایا و بسیار هم متنبی رو دوست داشت متنبی همون رو دوست داشت یه دفعه یه شغالی کردن و صیفالدوله دوله هم تحت تأثیر واقع شد حالا اینجا داره میگه که اگر یه کسی به آدم جود و بخشش کنه و گوش کنید بعد بخونم مفهوم بیت رو میگن میگه اگه کسی به آدم جود و بخشش کنه به آدم برسه خیلی هم با قول خودمون دست آدم رو بگیره ولی در مقابل این جود و بخشش و دستگیریش آزار اذیت کنه مثلا منت بگذاره توهین کنه تو سر آدم بزنه میگه این ارزش نداره این باعث میشه که هم اون پولشو از دست داده مال و منالشو از دست داده چون عطا کرده دیگه اونم گرفته دیگه از دستش رفت همینم هم که کسی نمیاد اینو مدحش کنه مردم برمیگردن فوقش نهایت میگن مردشورم پولشو ببره با اون حرکتش نه پولشو مخواستیم نه اون حرکتش هم مالش از دست میره همت و ستایشی به دست نمیاره اگر جود و ستایشی کسی اگر جود و ستایشی کسی خلاص و رها و آزاد از عذیت و آزار بگید نباش. نگاه کنید ازالجودو هنگامی که جود یعنی جودو کرم لم یرزق خلاصن منال ازا رزقه یرزقوت و مفعولیه لم یرزق زمیر داخلیش میخوره به جود نایفایلش خلاصا مفعول دومش هنگامی که جود رها کرده نشود رزق داده نشود عطا کرده نشود خلاصی از عذیت مناله از آن اگر جود به او رزق, و رزق, و رزق و روزیه خلاصی از عذیت داده نشه. خب چی میشه؟ این میشه بلل هم دو مک پس نه همد کسب میشه برای اون کسی که جود کرده ولل مالو باقیا و نه اون مالش باقی میگه مالشو رو میخورن هم که نمیکنند تازه فحش هم میدن برمیگردن میگن مردشون اون چیزی رو که دادی ببره با اون حرکتی که انجام ده. نه عطا تو میخوایم نه لغات. درست شد این ازل چون بعد از ازای شرطیه مبتدا واقع نمیشه فعل شرط میاد این الجودو نایب یه لم یرزق مقدره که این لم یرزق تفسیرش میکنه لم یرزق مقدره که این لمیورزق, تفسیرش میکنه. لمیورزق, مقدره که این لمیورزق تفسیرش میکنه که تو باب اشتغال شما خوندید به این میگن باب تفسیر این فلل هم دو مکسوبن ولل مال و باقیا درست شد اینم جزای شرط جزای شرد خب پس بنابراین این, این بیت رو هم کامل برای شما گفتم و شما دیدید پس ازل جود جود یعنی جود یک شخص کرم یک شخص این فایل یه لمیرزق مقدره که این لمیرزق تفسیرش میکنه چرا؟ چون بعد از ازای شرطیه بگید فعل شرط باید بیاد مبتدا نبیاد این لمیورزغ خلاصاً این جمله رو دیگه نمیگن بهش فعل شاد اون لمیورزغ مقدر با این الجود میشه فعل شاد این لمیورزغ بهش میگن جمله مفسره خلاصاً مفعول دوم لمیورزغه مفعول اولش وجود بر میگرده توی لمیورزغ من على متعلق به خلاص دروچو این فلل همدو مکسوبن این جمله فلل هم دو مکسوبن و جمله ولل مال و باقی که بهش شده این جمله جزای شرطه و جمله جزای شرط هم اگر بگید اسمیه باشه موقعی که بیاد فا میگیره این هم فا گرفته. درست فلل هم مکسوبن ولل مال و باقی ها این لاملای مشبهتون به لیسنست که دیگه بله. خب تمام شد اینم مال این و شما مطلب رو دیدید بسیار قشنگ یعنی چی گفت و دوله به ما خوبی کرد درست جود و کرم کرد اما جود و کرمش مردوشولش ببره وقتی جود و کرم رها و آزاد از آزار و نباشه توعم با آزار و باشه همراه با آزار اذیت باشه ارزش نداره چرا چون اونی که داده ماو گرفتیم و خوردیم با خون هم خوردیم حمدش هم که نکردیم ستایشش هم که نکردیم تازه بعدش هم پس جود و کرم موقعه ارزش داره که همراه با احترام باشه که طرف هم حمد کند ستایش کنه هر کجا میشینه بگه خدا پدرشو بیامرزه چه جود و کرمی به ما کرد مال طرف هم اگر رفته ارزش پیدا کرده چرا چون خوشنامی براش آورده ازالجود و لم یرزد خلاسند منالعذا فلل همدو مکسوبند ولل مالو باقشمی ولل نفس اخلاقون تدل على الفتا اکان سخا عطا، ام تساخیات میگه خلاصی این حرف آخر اینجا اینه میگه هرکی هرکاری میکنه بر اساس روحیات و بر اساس خلقیاتشه یعنی اون ژنشه که این کارو میکنه راز کسی جود و کرم میکنه چون ژنش جود و کرم درش هست آدمیه که جود و کرم تو خوشش خوششون یک کسی نه اگر جود و کرم هم بکنه این تو ذاتش نیست این داره فیلم بازی میکنه سخا داریم یعنی سخاقت که ما مسدر دومشو بکار به کار میبریم جود و کرم کردن ذاتی یه هم تساخی داریم باب تفاعل باب تفاول برای اظهار صفتیه که تو آدم نیست مثل تمارز اون؟ تساخی یعنی یه نفر خودشون میزنه به اینکه من جوادم جود میکنه جودنمایی میکنه جواد نمایی میکنه خودشو بخشنده نشون میده میگه فرق بین اینکه که یه نفر بخشنده باشه یا یه نفر فیلم بازی کنه خودشو بخشنده بگید نشون بده تساخی یعنی به زور سخا و کرم کردن فیلم بازی کردن برای این. ها سخا یعنی کرم سخا یسخو یعنی کرم کرد اما تساخه یه تساخه یعنی خودش رو زد به کرم, کرم نمایی کرد تساخی پس معناش یعنی به زور خود رو سخی نشون دادن یه چیزی نداره پس اینطور میگه و نفس اخلاقون برای نفس انسان اخلاق و خلق و هست تدلو که این اخلاق دلالت میکنه بر اون شخص یعنی روح انسان هر شخصی یه سری اخلاقیاتی داره که ما رو راه میکنه به باطن اون شخص علالفتا یعنی اون شخص اون جوان مد یعنی اخلاق انسان دلالت میکنه بر اون درست شو. یعنی چی توضیح میده اکانه سخا ان ما اتا این ما اتا یعنی ما اتا ها آید سلوف داده یعنی آنچه او آورده انجام داده کان سخا ان سخا ان خبر کانه که آیا آنچه که انجام داده سخا کرم ذاتیه ام تساخی یا آنچه که انجام داده تساخیه سخا نماییه درست شو؟ پس نگه نفسه اخلاق برای هر نفسی هر انسانی هر شخصی هر روحی نفس بیره روح برای هر کسی اخلاقیاتی هست تدلوا علالفتا این تدلوا علالفتا صفات اخلاقی اخلاق و خلق و خوهای هست که دلالت میکنه بر اون شخص یعنی ما الان شما من رو میخواهید بشناسید که آیا من اصلا کرم دارم یا ندارم آیا من سواد دارم یا ندارم آیا فلان از اخلاقیات من پی این به این میبرید دیگه و این اخلاقیات هم که من رو به شما نشون میده درست شد شما از این اخلاقیات دو نوع برداشت میکنید یه موقع اخلاقیات رو ذاتی میبینید آه میگه این واقعا قیمه اصلا خوشش میاد پیکیزی کمک کنید یه موقع میگه نم بابا فلانجا جلوی مردم بود این کار کرد یا عطا کرد بعدش با قول خودمون پشمون شد چقدرم به یارو بعد و بعد گفت سخا هست این کاری که انجام داده ماعت یعنی ماعت و آنچه که آورده او را سخا ها ان آنچه انجام داده سخا بوده کرم بوده ام ها یا نه تساخی بوده تساخی عطف به جای سخا ان. این اکان سخا ها ماعت سخا آن خبر کنست. ما عطا اسمشه یعنی ما هو بوده آید سلام حذف شده هم تساخیان تساخیان اتو به جای سخاه این جمله اکان سخا هم ما عطا هم بدل است از الفتا یعنی دلالت میکنه بر اون شخص ما رو راهنمایی میکنه اخلاق هر کسی بر اون شخص یعنی چی؟ یعنی ما رو راهنمایی میکنه بر اینکه آیا او عملش ذاتیست سخواه یا عملش فیلم بازی کردن تصاافه. ما رو راهنمایی میکنه بر اون شخص یعنی راهنمایی میکنه بر ذاتیات اون. که آیا این یعنی ذاتیاتش واقعا بر اساس اینه که کرم بخواد بکنه؟ یا نه بر اساس اینه که میخواد فیلم بازی کنه؟ درست رو؟ دیگه چیزی نداره پس این جمله جمعه اکانسخان ماعتا امتساخی ها این جمله بدل از الفت است. یعنی ما رو را راهنمایی میکنه مثلا نگاه کنید میگه ولی نفس برای روح انسان روح هر شخص، اخلاقیات است هر کسی اخلاقیات رو بر اساس باطنیاتش انجام میده. این اخلاق دلالت میکنه ما رو بر اون شخص حالا بچی اون شخص دلالت میکنه بدل میگه بر این که آیا اون کاری که کرده سخاست یا تساخی یا اون کاری که کرده شجاعت است یا شجاعت نمایی اون کاری که کرده مثلا فرض بفرمایید لطف و رحمت و دلسوزی است یا این بازی کردنه میگه هر کسی اخلاقیاتی داره هر شخصی اخلاقیاتی داره که ما رو دلالت برمون میکنه پس اینطور شد نه نفسه برای هر شخصی اخلاق اخلاقیاتی است. که ما را این تدول لافت صفته این که رو میگن که سفست که ما را راهنمایی میکنه بر اون شخص از روی اخلاقیاتشون شخص رو می شنایم. خب ما رو را راهنمایی میکنه بر اون شخص یعنی چی؟ یعنی ما رو را راهنمایی میکنه بر اینکه آیا او؟ عملی که انجام داده سخاوت بوده یا تساخی یا اینجا چون سخاوت و تساخی رو داشته بحث کرده اینو گفته حالا جای دیگه ما رو راهنمایی میکنه بر اون شخص که آیا کاری که کرده از سر شجاعت بوده یا شجاعت نمایی و همینطور بقیه ما از افعال هرکس کس پی می‌بریم به اینکه او آیا این صفت در او ذاتی یا این صفت در او آرزیست و نشانه از این دارد که او داره فیلم بازی میکنه اکانه سخا این در واقع چون بحثش سخا بوده اینا اینجا گفته پس این بیتش یه بیت روانشناسانه است یعنی شما افراد رو از او افعالشون میشناسید افعالشون به ما میگه که آیا این صفت در اون صفتی است ذاتی و این جزء ذاتیاتشه یا این صفتی است که برای کلاه سر ما داره انجام میده داره فیلم بازی میکنه منظورش چیه کنایه به صفات داره یعنی همه اون کرمایی که به ما کردی همش فیلم بود میخواسی جلوی مردم خودتو کریم نشون بدی کرم ذاتی نداری یعنی اگه کسی کرم ذاتی داشته باشه به کسی که بهش لطف کرده که بیادبی نمیکنه آزار و اذیت نمیکنه نقطه سرخه خیلی قشنگ ولن نفسه نفس خبر مقدم دم اخلاقون و اون جمله اکان سخاان هم بدل از الفتا قشنگ دیگه میتونید این عبارات رو به فهمید و من حالا میگه اقلش تیاغم اقلش تیاغم ایوه القلب ما وعی تو که توسفل ودن من لیست اجازی ها مم. چی میگن؟ میگن بمیر برای اون کسی که برای تب لاقل بکنه نگاه کنید اقل اقل اقل یقل اقل... اقل... اقلالن اقل یقل اقلالن فعل امر اقل لمش چی اقل لا اقل لا اقل لا من همه ما طلب کوشش کنی تا آخر بد اقل لا اقل لا یغلو شد اقل فعل امر است از اقل لا یغلو لن. اقل یعنی کم کن م? مثلا میگم اقل شکایتک کم کن این گل تو اقل کلامک کم کن این حرف تو. فعل یه مفعولیه دیگه مثلا میگم اقل زیدن کلام بود یعنی زد سخن کم کرد کوتا خب اقل نه اشتییا اشتییاند میشه نا. این با کی داشتیم میرو صحبت میکرد از اون حب تو که, که ما خوندیم تا الان با دل خودش حالا هم داره به دلش خطاب میکنه میگه اقل اشتیاقند و دنبالش میگه ای یا قلب یعنی یا ای یا حال قلبا یا حرف نذاشت آی دل یا ایوها مثل داد کشیدنه منادای بعید آورده یا ایها القلبو یعنی آهای دل انگار اون دل حواسش نیست غافل آهای دل کم کنی این بازی تو اشتیاق تو ابدل اشتیاقن یعنی به چی میگه اینقدر اش و علاقه نشون نده به این آیه سیفالدونی که اینطور بی وفا بود و ما رو نگرداخ کرد. آهای دل کم کن این اشتیاق و علاقه خودت رو. بعد داره میگه میگه چرا؟ میگه ربما ما رعیت و چ توس فل یعنی ودت که از, از میگه چه بسا ربما رأی که میبینم تو را توصفی این حال است در حالی که صفا و خلوص نشون میدی در دوستیت دوستید. در دوستی خودت صفا و خلوص نشون میدی خالصانه دوستی میکنی من با کسی که لیس ساکین او دوست نیست دوست با صفا نیست تو بعضی تو کتاب شما صافیانه تو دیوان خودش جازیانه جازیان یعنی پاسخگو جزاده هنده. تو داری دوستی صادقانه میکنی با کسی که نمیتونه پاسخ دوستی صادقانه بده میشه جازیان تو داری دوستی صادقانه میکنی با کسی که صاف و صادق در دوستی نیست میشه صافیان هر کدوم رو درست شد اگر بگی دوستی میکنی با کسی که در دوستی خود نمیتونه پاسخگوی دوستی باشه یعنی آدم بیوفای ذاتش ذات دوستی نیست براساس طبع خودش نمیتونه جزای دوستی رو بده نامرده نمیتونه مرد نگی کن اگر بگی دوستی میکنی با کسی که در دوستی خودش صادق نیست همین معنا رو داره چون ذاتش قضای صداقت در دوستی نداره این کسی که دوستی نمیتونه بکنه کیه همون آقای سیفوت میگه بین کنین عشق و علاقه نشون دادن و دوست دوست دوست گفتن و آهای دل حواست باشه تو داری عشق و علاقه و دوستی نشون میبینم تو رو که داری سوز و گداز میکنی دوستی و علاقه نشون بده به کسی که بگید نمیتونه پاسخ این دوستی رو بده یا نمیتونه بگو با صفای در دوستی باشه این رعی تو که تصفی تصفی زمیرش انتفائلشه این الوده مفعول دوم است. اون من مفعول اولشه یعنی تو صفا و دوستی کنی کسی رو که دوستی نمیکنه تو داری خلوص و صفا و دوستی نشون میدی به کسی که بگید قادر به این کار نیست، نمیتونه پاسخ خوب یا صافی. یعنی صفای در دوستی نداره. آه یعنی آدم خالص نیست، آدمی نیستش که اهل دوستی و با قول خودمون صفا و قلوس حالا صافیان صافیان هست جازیان هم توی دیوان اصلی خودشون هست حالا هر کدوم رو شما پاسندید معناش زیاد فرقی نمیکنه. و شما میتونید هر کدوم رو پاسدید بکنید حالا یه مطلب اینجا هست ببینید اینجا که گفته که کم کن این عشق و علاقه خودت رو اقل لا این کم کن منظوری نیستش که کمتر عشق و علاقه به اونشون نشون بده اینجا میگن اقل اشتیاقا یعنی دست بردار از این مشخص شده نه منظورش اینه که اصلا ولش کن عشق و علاقه رو به کسی که عشق و علاقه سرش نمیشه نه اینکه کم کن ما هم تو فارسی گایی آقادینه میگیم دست نیکن اون میگیم دست از این پوزبازیات بردار یه موقع این کم کن دیگه این پوزبازی ها این کم کن یعنی نه اینکه که قول خودمون کمتر پوزبازی کن چون پوزبازی کردن پوز دادن که چیز خوبی نیست که بگیم کم کن مشخص چیز خوبی نیست ولی وقتی که شما میگید که کم کن مثلا میگید کم کن این فیلم بازیاتو یا کم کن این پر رویاتو تو این نیست که پر رویه کمی کن یعنی اصلا پر رویه نکن این رو توی عربی هم هست تو فارسی هست پس معنای این شیر چی میشه؟ کم کن اش با علاقت رو ای دل چه بسا؟ میبینمت از یعنی به طور قط چه بسام یعنی به طور قط دارم تو رو میبینم که داری دوستی میکنی خلوص و عشق و علاقه در دوستی نشون می به کسی که نمیتونه پاسخ خوب باشه یا او در عشق و علاقه و دوستی صاف و صالح نیست الوده مفعول دومه تصفی بود من لعیس جازی ها مفعول اول که مفعول دوم رو مقدم کرده مفعول اول رو معخر کرده بدن که مفعول اول یه مقدار طول و دراز بوده برد شد مفعول اول یه مقدار طول و دراز بوده این باعث شده که چنین زرفتار کن خب این هم مالید. یعنی مفهول دوم و مقدم کرده واسه خاطر که هم مفهول اول دراز بوده با سله و موصول بوده این راحت تر فهمیده بشه همینم که قافیه بیت میتونسته جورده با جازین یا صافیه صافیه میتونسته قافیه شعرش رو برسته خب اینم فقط یه نکته تون اقل نبود ها؟ که اشتیاقاً مفعولش که کم کن این عشق و علاقه رو من گفتم اینجا کم کن یعنی چی یعنی که اصلا بذار کنار اینو ما گفتیم تو فارسی هم بقا... به و این‌وای‌وای می‌گیم که بقا... آی, کم کن پر تو یعنی دست بردار ازش اینجا این اشتیاقی که این نشون میداده به کسی که نامرده مثل همون روی گردنه امر نامحبوبیه وقتی میگه کمش کن یعنی اینکه اصلا بذارش کنار این چه کاریه میکنی دنبال این نا. خب بریم سر بیت بعدی میگه خلق تو علوفن لورجعتو اینا سه بار شیبی مو قلب قلبه باکیا مو جعل قلبه باکیا خب الف سیغه مبالغت از الفت یعنی بسیار الفت خلق تو علوفن علوفن حال از باری تای خلق تو مثل که بگم خلق تو ضعیفن که دو قرآن داریم خلق انسانو انسانا ضعیفا یعنی انسان آفریده شده در حالی که ضعیفه این خلق تو علوفن یعنی من الفت گیر آفریده شدم عشق و علاقه نشون دادن تو ذات منه الفتگیری در ذات من آفریده شدم به دنیا آمدم با عشق و علاقه یعنی من اینطوریم آدمیم دل میبندم گرفته چی شد؟ خلق تو علوفن خب علوفن شد حال علوفن شد حال لو معلومه دیگه ادات شرطه ولی میگن عدات شرط ماضیه زمان گذشته جواب شرط ممتنع شده منفی شده به خاطر اینکه فعل شرط ممتنع شده به خاطر اینکه بگید فعل شرط ممتنع مزه که میگم لو قرآتو لو قرآتو ل بله دید دیگه لو ل لنجحتو یعنی چی؟ یعنی اگر خونده بودم قبول می شدم یعنی قبول نشدم چون بگید نخوندم قبول نشدم چون نخوندم اگر خونده بودم قبول می‌شدن الان قبول شدن ممتنع شده به خاطر اینکه بگید فعل شرط قراءت ممتنع شد بهش میگن حرف امتناع ل امتناع حرف شرطیه که جوابش ممتنع به خاطر اینکه فعل شرطش شد اگر جواب شرطشم هم مثبت باشه با لام میاد الان من مثالی که زدم گفتم لو قرآتو لنجهتو لو قرآتو لنجهتو الان خود ایشون هم نگاه کنید لو رحلتو ال سبا الاس سبا سبا سبا باد سباست سبا بقول سبا خودمون اشق و است و جوانیه الاس سبا لفارق تو اون رحل تو فیله چیه بگید جواب شد. سبا با شیبی، سبا با شیب با هم متضاد سبا یعنی شروع جوانی شیب یعنی پیری درست رو موجه یعنی موجه ان قلبهو موجعن قلبی موجعن موجع اسم مفعوله یعنی درد آمده موجع یعنی دردآور داور، موجع یعنی درد و درد آمده اون اضافه شده به قلبی اون قلبی نایفاهلشه یعنی موجعن انگاه اینطوری گفته موجعن قلبه اضافه لفظیه است به نهاد. نهاد موجعن ما این حال اوله باکیان حال دومه باکیان حال دومه باکیان حال دومه اون توی دیوان به جای رجعتو نوشته رحلتو رحلتو رحله یعنی کوچ کرد رجع یعنی برگشت رجعتو یا رحل شد چه میده؟ حتما تونستید با یه مقدار من از یه ذره سکوت کردم که شما بتونید نگاه کنید بفهمید میگه که خلق تو علوفه من آدمی هستم دل می‌بندم بندم. خه خب. آد قول خودمون با وفایی هستم مثل بهتایی قبل دیگه میگه من اینطوری هم علوم نمیتونم قدردار باشم. من دل میبندم من دل بسته آفریده شدم من عاشق آفریده شدم. من با اشق علاقه آفریده شدم لو رجعتو لو رهلت و ال اگه منو برگردونند به دوران جوانی اگه برگردن به دوران جوانی تو شیبی اصلا پیری رو میذارم کنار تو همون جوانی میمونم موجع القلب باکیا در حالی که دلم با قول خودمون درد آمده و گریه میکنه درست شد خب چرا چون افراد در جوانی آشغندریه اولا پیری که جای این حرفا نیست؟ پیری در دوره فرطوتگی و فرسودگی است میگه من اینطوری هستم اصلا, اصلا فرض کنید الان که حالا پیر شدیم اگر من برگردم به جوانی ها لا نمیشه که میگه جواب ممتنع به خاطر که فعلش ممتنع میگه اگر به فرض محال من برگردم به جوانی کوچ کنم به جوانی لفارخت و شعیبی از پیری خودم دست می کشم موجه القلبه واکیا از پیری خودم درد میاد. چرا چون تو پیری من قلبم درد گرفته گریه دارم بکنم برای اون دوران عشق و علاقه که میتونستم عشق و علاقه داشته الان ندارم میگم من در دوران پیری دارم گریه می کنم دل غمین هستم چرا؟ تو من عاشقم؟ اگر من برگردم به جوانی ها لفارق تو شبی اگه میشد برگردم به جوانی، پیری رو میذاشتم کنار پیری که من اینطور طور قول خودمون درش؟ دل خمین دارم و چشم گریان دل خمین دارم و چشم؟ چرا چون من آدمی هستم که اهل عشق و علاقه هستم چون من اهل عشق و علاقه و هستم چرا چون اگه بی وفا بودم آه. ما تو جوونی هم بی وفایی کرده حالا تو پیری هم دیگه دلم نمی سخوا چون من دنبال عشق و علاقه و وفا هستم الان تو پیری برام سخته اگر از پیری برگردم به جوانی آه کیف میکنم همون حالت خودمون رو دارم خلق تو علوفن لو حل دو اگر من برگردم به جوانی به دلیل اینکه عشق و علاقه دارم همونطور عاشق میمونم و الان پیری رو میدارم کنار پیری که من دلم غمین است و چشمم عشق لفارقت و شعیبی قلب قلبه با پیان این دوتا حال است از برای تای فارقتو لفارقت شیبی شعیبی جوانی رو پیری رو میداختم دور از پیری فرار میکردم در حالی که قلبم درد گرفته و چشمم گریه میکنه چرا؟ چون پیری رو نمیخوام من آدمی هستم دل میبندم اگر برگردم به جوانی پیری رو رها میکنم در حالی که بگو چشم گریان و قلب محضون دارم چرا؟ چون من آدمی هستم که اهل وفا هستم چون تو جوانی میتونستم اشخوا عاشقی کنم میتونستم دل ببندم و وفای خودم رو عرضه کنم ارزا وفای خودم رو بکنم قشنگ درست شد؟ پس خلقت و لو لورجعتو که گفتم توی نصف دیوان داره لورحلت و الی با چی؟ لفارقت و شیبی موجع القلبه با کیا؟ دیگه تقریبا همه آنچه که بخواهید بگید بریم به اینکه بعدی ولیکن نه حالا رسید طب. هنوز وارد متحه آیه چیز نشده ها هنوز وارد متحه آیه کافور که اصل قصیده برای اصل فستاد فستاد که میدونید یه شهر است در مصر و پایه و اساس این شهر رو هم عمرواس گذاشت عمرواس بعد از اینکه مالک اشتر رو مسموم کردند به توطعه او و معاویه و محمد ابن ابی بکر رو که والی اونجا بود به شهادت رسوند حاکم بر اون منطقه مصر شد این شهر فستاد در واقع پای ریزی شکر. یعنی اون منطقه رو حالا روستایی بوده چیزی بوده اومد و افراد رو به اونجا کوچ داد یه شهر ساختن یعنی مردم جانشین شدن خونه ساختن و مواردش میگن اون جایابی اولی و نقشش مال امرهاست حالا خواهی فستاد شهر در نیست میگه ولیکن نه بل فستاد با به معنای فیه دیگه یعنی در فستاد در شهر فستاد بحرن است. ما میدونیم توی شهر فستاد دریا نیست منظورش از دریا چیه؟ انسان کریم رو تشبیه به چی میکنن؟ به دریا اینو میگن استعاره استعاره مسرح هست اون کافور تشبیه شده به دریا مثل اینکه که بگیم در این خانه شیریست خب ما که این خونه زید نشست، یا بر روی این موش شیری نشسته است نگاه میکنیم میبینیم که آقای فلانی نشسته اونو تشبیه به شیر کردیم دیگه میگه ولیکن نبل فستات بهرن ولی در فستات میگه درست بیوفایی و فلان و فلان ما دیدیم خب میگه اگه من بازم برگردم به دوره تو بیت قبلش کنم اگه بازم برگردم به دوره جوانی بازم اشخو علاقه میکنم اشیمون نیستم از اینکه از جوانیم در کنار سیف و دوله بودم و با وفا بودم با او اگه برگردم به اون دوران باز همش اشخو علاقه میکنم و این دوره پیری که الان محضون هستم و غمگین هستم بنش میکنم چرا؟ چون من اصلا با وفا آفریده شدم این تو بیت قبل بعد میگه ولی بگذاریم ولکن نہ بر بحرن ولی در فسطات بهریست است این جمله اذر تو اذر تو حیاتی اون اول حیاتی مفعول دومه یا بعضیا میگن ها مفعول دوم حیاتی مفعول اوله حالا ببینیم کدوم ازر تو باب افعال شد از زاره زاره مجردشه مجردش زاره یزوره. قامه یقومو حالا قامه بره تو باب افعال میشه چی؟ اقامه سرفش کنیم به سیغه سیزده برسه میشه چی؟ اقام تو اینم اذر تو درست شد انشالله فهمیدید اگر درست کنید قام یقوم و بره به باب افعال اقام یقوم و صرف شه اقم تو اینم عزر تو خب عزر نگاه کنید خب میگه که ولیکن نه بل فستات بحرد ولی در فستات یه دریای کرم است یعنی آقای کاپور اخشیدی این ازرتوهو جمله صفت این دریاست صفت برای این دریا جمله بعد از نکنید تو هو حیاتی و نسی و لحوا و لحوا و القوافی تو هو یعنی عطا میکنم به او میدم به او چیو میدم به او حیاتی زندگی خودم به. و نصي خیر خودم رو و هوا یعنی و هوای و هوای عشق و علاقه خودم رو و القوافی یعنی القوافی یعنی و قوافیه قوافی جمع قافیه است یعنی قافیه هایم را دو تا شو با الفلام گفته گفت یعنی از لاما غزوز با یا گفته یعنی حیاتی و ناسهی و هوای و قوافی همش باید ولی خب مقاسه قافیه شعرش درسته الهوا و القوافی رو با الفلامی که عوض از مزافر دیگه گفته مم. گفت بگذاریم از این ناسهی یعنی خیرخواهی هم ده. نصحی نصیحت نصحی نصحی یعنی خیرخواهی خودم رو خیرخاهی خودم رو حیات خودم رو عشق و علاقه خودم رو هوا و قوافی شعر و شاعری خودم رو شعرهای خودم رو میخوام به پاش بریزم ازر تو رو اینها رو درست میگه ولی در فستاد میگه بگذریم از اون نامردی که به ما این کار کرد ولی در فستاد دریاییست که. که که ساز دیگه اینجا به بعد صفت دریاییست که به پای او میریزم زندگی خودم رو خیرخواهی خودم رو عشق و علاقه خودم رو و بگید شعرهای خودم رو رو فدای او میگه بگذاریم از این که ما جوانیمونو فدایی کسی کردیم که میوفا بود الانم پشیمون نیستم چون من اصلا با وفا فریده شدم الانم اگه برگردم به دوره جوانی چون من خلق و علوفن بازم اشخ و علاقه نشون میدم الان اگر دلم میسوزه باکی هستم به قول خودمون قلب غمگین دارم از نامردی فلان ولی بازم برگردم به جوانی این نیستش که منم در حق اون آمرده کنم من نمی کنم. من مرد آفریده شدم من با وفا آفریده شدم ولی بگذاریم از این ولیکن نه به فستاد بریم سراغ این در فستاد یه است من میخوام الان ازر توهو میخوام الان به او بریزم اعتای توهو بهش بدم حیات خودم رو نسخ خودم رو تمام خیرخواهی خودم عشق و حلاقه خودم شعرهای خودم حیات خودم همه رو فدای او کنم آه. از اینجا داره به اسطلاح شعری میگن گریز گریز زد با این ولیکن نه به سوی کی؟ به سوی آقای کاف گفت ولی من میرم به سوی دریایی که این دریا رو میخوام هرچی دارم به پاش بریزم متوجه شده دیگه نه نمی دانم خب خوب ماشا انگور و لکن نبل استاد بهرم اذر تو خوب نهاد مفعول اول حیاتی و نصحی و الهوا و القوافی مفعول دوم خب دیگه چه چیزایی رو میخوای پاش بریزی؟ میگه و جردن و جردن جرد جمع اجرد و جردا، جرد جمع اجرد و جردا، صفت اسب اسب خوب بهش میگن جردان. این عطفه بر همون حیاتیه یعنی او چهار تا چیز رو به پاش میریزم حیاتی و نصفی و الهوا و قوافیا ها اینجا میگه و جردن پنجمی درست شد عطفه بر حیاتی جردا از پارتون ماده برمیداشتن لذا مادیان سوار شدن چون اسب نر چموشی می‌کردن و می بستن به گاری یا برای بار بردن. ولی برای جنگ و برای حرکات و این دور چیزها اسبای ماده که مادیان می‌گفتن استفاده می‌کرد. حالا تو این مسابقه ها و اینها همین طور. می‌گه اسب پای موکوتا جردا بهترین نوع اسبه. اونم شد. و جردن مددنا بین ازان حلقنا این صفت جردن این در واقع یعنی اینطوری باید بگه دیگه و خیلا جردن و به پاش میریزم اسبانی مکوتاه مددنا بین آزانها ها القنا القنا مفعول مددناست کشیدیم این مددنا صفت اون اسبانه مثل جردن کشیدیم بین گوشهای اونها درست شد القنا، نیزه ها رو، قناه ها همه نیزه اگه نگاه کنید گوشهای اسب این ور اونوره یه نفری که روش نشسته درست شد بخواد با دشمن رو به رو به جنگه این نیزه اینطوری به طور با خودمون افقی به طرف دشمن بگیره این نیزه درست وسط این دوتا گوش عصب یعنی با عصب بینشسته اینطوری دستش بالا نیزه رو گرفته میخواد بزنه پرت کنه به طرف دشمن این نیزه همیشه وسط این دوتا گوشه چون اون وسط بالاش نشسته دیگه دستش رو بلند میکنین اینطوری پررک میکنه این گوش های اسب می مثل چیه؟ مثل این مگسه که بغل خودمون توفنگ که شما نشونه نمیدونیم این گوش های اسب انگار از وسط اون دو تا گوش اسب ما نزه ها رو به دشمن پرت کردیم یعنی اصانی که تو میتون جنگ بردی و اونها رو حسابی آبدیدده کرد اینا رو میخوام بریزن به باش و جردن مددنا بین آزان حلقنا با باته از افعال ناقصه است یعنی ساره بتن خفافند خفاف جمع خفیف یعنی چابک پس اونها چابک شدند یعنی خبر بتنست بتنه اون نون اسمشه چون ما اینها حال زیاد میدون جنگ بردیم و از بالای سر اونها از بین دو گوششون از روی سرشون نیزه به دشمن پرت کردیم تو جنگ ازشون استفاده کردیم اینا دیگه چابوکن ثبت نخفافن یتتبع نل اوالیا یتتبع خبر دومه یتبعه نه یعنی دنبال میکنن الا اوالی. اوالی جمع عالی است یعنی نیزه درست شد نه و دنبال نیزه هایی که ما پرتن و اوالی با باقه الگناه یکیه اولی جمع عالی است یعنی نیزه درست یعنی ما نیزه ها رو از وسط دو تا گوش اونها به دشمن نشانه میرفتیم یا همچین اسبانی اینها چابک شدند و میدوند دنبال میکنن این نیزه ای رو که ما پرد میکنیم یعنی ما نیزه رو میزنیم زنیم اون میدونه که نیزه خود باید برسه بالای سر اون کسی که نیزه بهش خورد و ما برسیم و اونو کارشو تمام کنیم و بگید یا اگر او رو در شکار بردیم این اسب رو جو هم در شکار می بردن هم در جنگ در شکار اگر بردیم نیزه ای رو پرت کردیم به شکار به محض اینکه به شکار خورد اون میدونه نیزه رو باید دنبال کنه به سرعت به دنبال نیزه میره تا نیزه خورد به اون هدف او بالای سر اون هدف وایساده حالا شکار باشد یا دشمن باشه ما میرسیم و کار رو بگید تمام بکنیم میرسیم و کار رو تمام گفت اینا رو میخوام پاشویم یعنی میخواد بگیم من خودم بزمنده خودم اهل جنگ و جبه هستیم اینا رو میخواییم بریزیم پاش پای اون بهر و جردن مددنا بین آذان حلقنا اون تصویرش خیلی قشنگه و مو کوتاهی رو که کشیده این ما بین گوشهای اونها نیزههایمان را پس اونها گردیدن چابک که دنبال میکنند بگید نیزههای های ما رو که این نیزه به هدف خورد اونها درست همونجا حاضر باشند. حالا از این بیت ببرد شروع میکنه این ها رو توصیف کردن چون توصیف اسب به قول خودمون یکی از چیزایی بوده که اینها خیلی بهش علاقه مند بودن توصیف اسب چون اسب براشون چه ارزش داشته مظهر به قول خودمون جنگاوری و فلان و غیره و شجاعت و اینها بوده این هایی رو که میگه من همراه خود دارم و این اسب‌های چابک رو میخوام هدیه میخوام اینا رو هدیه کنم به آهای کافور اخشیدی اصفایی هستن که ما بر روی اونها دشمن رو با نیزه زده و این اصفا چابک سریع هنوز نیزه نرسیده به هدف اینها نیزه رو از بالا میبینن رها شد با چشم نیزه رو دنبال میکنن به سرعت میرن به محض اینکه که نیزه میخوره اونها بالای سر هدف حاضرن حالا اون هدف شکار باشه یا هدف جنگ آبر باشه فهمیدید فهمیدید یا نه خب بله. شعرش قشنگه نگاه کنید بیت بعد رو هم بخونم؟ تماشا به عیدن کُلما موقعت صفا نگاش نه به صد رل هوا تماشا یعنی ت تماشا تماشا یکی از تاها افتاده یادتون باشه گفتم باب تفعال باب تفعول تفاون و تفعلل چند تا باب شد؟ ستا تفعال تفاول، تفعلل مثل تدهرچ تزلزل این تا باب اگر در مزارع معلوم اونها دو تا تا در کنار هم جمع شود جایز است یکی را حذف کنید جایز است یکی را مثل تن از زلول تو و روح دو سوره نانزلنا تن از تو و روح یعنی چی تن از زلول تو و روح؟ یعنی تتن از درست شد؟ اینجا بوده تتماشا. تماشا تماشا به عیدن این تتماشا زمیر هیه میخوره به اون جرد خیل و اسوان تماشا به عیدن کلما وافت صفا ما وافت الصفا، آه، ما وافت, الصفا، وافت زمیر میخوره به عیدن زمیر داخلش از صفا مفعولش. نقشنه این نون باز میخوره به عیدن عیدی جمعیت چون جمع مکسره میشه مفرد محنس اصابش کنیم بگیم وافت هم میتونیم جمع اصابش کنیم بگیم نقشنه یه بار اینطوری حساب کرده یه بار بود نه بهی بهی میخوره به صفا صدر الوزاد. صدرالبزاد مفعول نقشن است درست شد حوافی, حوافی جمع خافی است درست شد حال است از برای اون نون نقشنه صفا یعنی سخر تخت سنگ سخر و تختی سنگ از صفا این تخت سنگ موزاک جمع بازه آمون باز شکاری. هم که گفتیم حال است جمع خوافیه درست حال است از برای منون نقشنه میگه تماشا تماشا یعنی تتمشا تتمشا یعنی راه میرن کی راه میره اون از پای که گفته بود میخوام بریزم به پای کافو تماشا به عیدن. یعنی حرکت میکنن با اون دست هاشون یعنی دستو باهاشون تو کلما وافت الصفا هرگاه کلما وافت صفحه میخوره این دست ها به تخت سنگ ها. یعنی یعنی سینکش کورو میرن بالا این دست‌ها میخوره روی این بگید سنگ ها. وقتی میخوره روی این نقشنن نقش میکنند نقش میکنند چیرو بهی بر روی اون تخت سنگ ها نقش میکنند بر روی اون تخت سنگ ها سدرال بزاد سینه بازهای شکاری رو اگه سینه اقابی باشید سینه باز شکاری اقاب باز, باز شکاری سینه شون دواشید یه حالت مثل نل داره یه حالت اینطوری برامتگی داره مثل گنبد میگه اینا وقتی که این اصخواه ما راه میرن با دستاشون میکوبند این دست رو جلو میکوبند دیدید اصخواه مقدس؟ چیزی بره بالا با این دستاش تب و میزنه میره بالا از چی؟ میره وقتی میکوبر روی این تخت سنگ ها از سینه کش کوها برن بالا این اثر میگذاره دست های این ها بر روی اون تخت سنگ سینه باز شکاری رو یعنی مثل سینه باز شکاری علامت میگذاره آه؟ یه علامت های انگار که سینه باز شکاری زده شده روی اون سنگ ها در حالی که اینها ها حوافی هن. به پاشونم چیزی بسته نشده پای برهنه دارن یعنی آخه دیگران میان اصفاشون رو به قول خودمون نل دوبل میکنن بعد به پای اون اصفارو پا یک سری به خود چیز چرمهایی رو مثل چکمه درست میکردن میپوشوندن و این ها رو آوردن میگه نه ما اصفامون پا پاپای لخت انقدر اینها بقول قول خودمون سفت استوارن وقتی که پا بر روی تخت سنگ ها میذارن و میرن روی اون تخت سنگ ها نقش سینه باز شکاری رو میدازن در صورتی که بگید در صورتی که پاهاشونم برهنه است پاهاشونم به قول خودمون پوشیده نیست پاهاشونم برهنه است من چیزی که بخواهم برای شما الان توی این بگم دیگه پیدا نمی کنم یعنی هرچی که قرار بود بفهمید رو گفتم نقشن بهی این نقشن جواب کلماست کلما عداد شرط دیگه یعنی هر وقت یعنی متا اون وافت فعل شرطشه نقشن جواب شرطشه بهی هم میخوره به سفا صدر البزاد یعنی سینه بازها این صدر مفعول نقشن است هوافیان حال حال از برای هوافیه حال است از برای نون نقش یه چیزی که بخواد داشته باشه من نمیدینم حالا شما اگر هرچی که قرار بود بگم کامل برای شما گفتم حتی از گرامری هم میکیم خب باشه مشکل نیست تماشا یعنی وقتی که حرکت میکنن راه میرند و عیدن یعنی با دستخاشون گفته دستخان چون گفته دستخاشون دستخان میکوبه میره جلو و پاها به دنبالش میاد وقتی با دست‌هاشون حرکت میکنند کل وافت هر وقت برخورد میکنه این دست‌ها با تخت سنگ کو کوه نقاشی نقش نبهی می نقاشی میکنه نقش میکنه این دست‌ها. بر روی اون تخت سنگ ها سینه بازهای شکاری رو یعنی مثل سینه باز شکاری عکس سینه باز شکاری رو مینداختن میندازن روی سنگ ها مبالغه کرده دیگه خب در حالی که پاهاشون هم برهنه است یعنی چیزی به پا ندارند یعنی انقدر مهارت مهارت دارند نیاز به اینکه پابند داشته باشن و پاشون پوشیده بشه نیست ما اینا رو زیاد کردیم پاها سفت شده محکم شده بعد تخت سنگ ها میکوبه و میره و وقتی میکوبه عکس عکس اون پایشونها روی اون تخت سنگ ها میفته شد تماشا به عیدن. حالا اگر میخواید بسید یه نرم. خب پس اینطور شد دیگه درست شد این عصف ها راه میرن با دست هنگامی که قدم میگذارن بر روی تخت سنگ ها تأثیر میکنن در این تخت سنگ ها اثر میگذارند در این تخت سنگ ها مثل سینه بازهای شکاری را در حالی که این اصفا پاهاشون هم برهنه است دستاشون پاپوش هم نداره. خب میخواد همین بحث اصف رو ادامه بده که انشالله بقیهش بماند برای جلسه بعد ما درست شد انشاءالله الله که نگاه میکنید و من خیلی هم سعی میکنم که همه مطالب بدونی باشه که شما بتونید به بهترین وجهش استفاده کنید وصل الله علی نبینا و آله